روز چهاردهم ماه اوت هوا ابری بعد از ظهر هوا صاف شیگکو و یاسوکو نامه‌ای برای صاحبخانه نوشتند و بعد ساعت 5 صبح آزم زادگاه واقع در منطقه جینسکی شدند برای نهار علاوه بر برنج برشته کمی نمک تعم و قم آب همراه بردند. غیر از اینها چیزی در خانه نبود. قانون این بود که گواهی آسیب در بمباران را رئیس شرایاری محل در آوار هیروشیما صادر کنند. اما آنها بدون گذشتن از هیروشیما با قطار شمال از طریق کابه و شهرک شیعو برمی گشتند. پس بی گواهی رفتند. هیچ کدام از افرادی که از شهر سوخته به مناطق دور دست می رفتند، از لحاظ قانونی با مشکلی مواجه نمی شدند. هر دو نفر را بدرقه کردم و باز خوابیدم. خواب مردی یک را دیدم که کیمانوی با استینهای دراز پوشیده بود. با ملاقهای بلند در دست پرواز میکرد بیدار شدم. کمی عرق کرده بودم. وقتی خواستم لباس عوض کنم و راهی محل کار شوم به محض درآوردن لباس خواب متوجه شدم بعضی از لباس همسرم را پوشیدم. دیشب بعد از اینکه رئیس برگشت روی میز را مرتب کردم و به بستر رفتم. همسرم و یاسوکو برای شستن پیراهن و لباس خوابم کنار نهر کوچک پشتی رفته بودند پس لباس دم دست را پوشیده و خوابیده بودم. هنوز چیزکی در بطری منده بود بنوشم یا نه؟ چوب پنبه سر باتری را برداشتم و بو کردم چوب پنبه را سر جایش گذاشتم و به آشپزخانه رفتم داشتم دنبال فنجانی میگشتم که اعلان خطر حمله هوایی شد در اطلاعیه چند روز پیش فرماندهی کل ارتش در شرق تذکر داده شده بود که قدرت بمب دشمن با محوریت موج انفجار و موج گرماست پس لباس های مناسب بپوشید و بدن خود را در معرض آن قرار ندهید همچنین قید شده بود حتی وقتی که دو تا سه هواپیمای دشمن هم دیده می شود باید به پناهگاه رفت اما پناهگاه این خانه فقط یک حفره ساده بود بیرون آمدم و نگاه کردم در آسمان سمت های کابه و در عین حال سمت هیروشیما هم اثری از هواپیما نبود بنابراین درها را بستم و ازم محل کار شدم. همان وقت آژیر حمله هوایی به صدا درآمد و از جایی صدای برخورد بمب به زمین هم شنیده شد. زمین لرزید. از خانه کنار راه کسی فریاد زد، هیواکونی بود. از کنار خوابگاه کارکنان کارخانه گذشتم و وارد دفتر شدم. هنوز هیچ کس نیامده بود. فیلتر سیگاری را که آنجا افتاده بود به چوب سیگاری زدم و داشتم میکشیدم که دو سه نفر از کارمندان زن با عجله آمدند نفس نفس زنان گفتند صبح خیر چیزی شده است چیز خاصی نیست چرا رئیس خوابگاه گفتند بیاییم، بپرسیم اتفاقی افتاده آقای شیزوما دیده بود که شما با عجله حسم شرکت بودید پس برایشان شکی باقی نماند که اتفاقی رخ داده به ما گفت زود بروید بپرسید و بیایید سه چهار نفر دیگر از کارمندان هم با چهره نگران آمدند و گفتند صبح خیر آادرس مهمی اتفاق افتاده؟ کسانی هم گفتند صدای حمله هوایی مدتی قبل احتمالاً از بمبی معمولی بود همه میگویند که ایواکونی بود اما با خاطری مکدر چیزی را گفتم که به ذهنم آمد هیچ اتفاق خاصی نیفتاده میخواهم برای مذاکره درباره سنگ به ایستگاه کوئی بروم بنابراین برای گرفتن نهار آمدم در واقع هم به ایستگاه کوی رفتم. با این همه خیلی زود راهی شرکت شده بودم. خودم هم فکر کردم خلاف همیشه بوده. زمانی که از هیراشیما سر کار می آمدم، 27-8 روز از ماه را قبل ساعت دوازده و نیم می رسیدم. امروز خیلی زود آمده بودم. پس باعث نگرانی کارمندان شدم. از وقتی هیروشیما بمباران شد همیشه نگرانم که اینی دشمن دشمن به خاک ژاپن وارد خواهند شد. که ای زمان جان تا آخرین نفر از صد میلیون فرا خواهد رسید شاید کارمندان هم مانند من نگران بودند سازمان فقط اراده انسانها را محکم می کرد و از اعتراض و حتی به زبان آوردن احساس تشویش هم جلوگیری می کرد. صبحانه بلغور سبوستار و سوپ میسو با مخلوط جعفری ریز شده و ناهار نیگیری همان بلغور همراه با سکودانی بود. از ماه آوریل گذشته به جعفری ها تخم و نازاد زالو چسبیده بود که در زمان معمولی غیر قابل خوردنشان می کرد. کارمند میانسالی به نام ناکاتا که در صندلی کنارم نشسته بود از خدمتکار زنی که سوپ ها را آورد پرسید سوپ میسو خوب جوشیده است؟ جواب داد چند برابر طولانی تر از همیشه جوشاندیمش. وقتی که من پرسیدم تسوکودانی صدف نهار از صدف خوراکی تهیه شده است؟ جواب داد صدف شیافوکی است. جوشنده آن را در آب دریا از بازار سیاه گیر آوردیم و آشپز آن را در سس سویا هم جوشاند. صحبت آقای ناکاتا این بود که اخیراً در شهرک ماهی گیران صدف شیافوکی را بعد از جوشاندن در آب نمک در بازار سیاه می فروشند. اما نمک توزیعی هم سر از بازار سیاه درآورده بود. پس را در آب دریا میجوشندند. روز به روز نمک به کالای مهمتری تبدیل میشد اگر روزهای بدون نمک زیاد شود حتی برای کشتن مگسی هم که روی دست مینشیند مشکل خواهیم داشت حتی دستی که به مگس حمله میکند برای له کردنش نمیتواند به دست دیگر برسد اینها را آقای ناکاتا گفت آزم شهرک کوی شدم. مانند صبح دیروز با نزدیک شدن به فرویچی، گیان، یاماموتو و آوار سوخته دود ناشی از سوختن جنازه ها که به هوا بلند بود کمتر میشد. دود مکانهای مرد سوزی در ساحل رودخانه ردیف شده بود. از یاماموتو تا یکاگاوا باید پیاده میرفتم. رفتم. از یکاگاوا تا کویی فقط به اندازه یک محله فاصل است. پس در امتداد خطوط قدم زدم. امیدی نداشتم که واگن زغار سنگی به ایستگاه کوی وارد شده باشد. با این وجود آدمی احساساتی بودم. پس در حالی که سایه کمرنگم روی تراورس ها دنبالم می آمد، قدم زنان پیش رفتم. ناگهان برگشتم و نگاه کردم. در دور دست، در آسمان، ابرهای رقیق، رنگین کمانی سفید رنگ را پهلوی نور ضعیف خورشید صبحگاهی درست کرده بودند. رنگین کمانی عجیب بود. به یاد آوردم در دوره کودکی‌ام سفیددم رنگین کمان نقره‌ای از کوه بیرون آمده بود. رنگین کمان نقره‌ای را دیده و با تعجب آن فکر کرده بودم. امروز اولین بار بود که در طول روز رنگین کمانی سفید می‌دیدم. در ایستگاه کوی رئیس ایستگاه و کارکنان آن جلسه العاده داشتند. صبر کردم. بر دیوار اتاق انتظار ایستگاه اطلاعیه زیادی برای جستجوی افراد چسبانده شده بود. یک سرباز از دژبانی ارتش یکی یکی آنها را بررسی می کرد. به هیچ دلیلی متوجه آن وضعیت شدم. نیمکت ها اگر نیمکت بودند، مصیبت زدگان اشغالشان کرده بودند. در نزدیکترین نیمکت به قسمت اقزبلیت، دو کودک لخت به پشت خوابیده بودند. حتی شورت هم نداشتند. کنار آنها پیرمرد و پیرزنی با چشمانی بسته نشسته بودند. به نظر میرسید با نوه هایشان در راه ماندند. خیلی زود جلسه رئیس ایستگاه تمام شد. قطاری پر از مسافر گذشت. یک واگن زغال سنگ هم دیده نمیشد برای ملاقات با رئیس ایستگاه اجازه گرفتم. درباره واگن زغال سنگ پرسیدم. نه تنها از روز ششم ماه اوت تا کنون یک واگن زغال سنگ هم نیامده که درباره رسیدن آن در روزهای آینده هم تماسی گرفته نشده بود از روز ششم تا امروز حمل نقل مسافر بی‌وقفه ادامه پیدا کرده اما بار به هیچ وجه جابجا جا نشده بود چاره‌ای نبود وضعیت شرکت را شهر دادم با این هدف که از این به بعد با تلفن از واس پارسا جو کنم از رئیس ایستگاه کمک خواستم سرباز دژبان بدون هیچ حرفی نزدیک شد و در حالی که کفش هایش صدا کرد، اعلامیه های دیوار را یکی یکی خواند. سرانجام هم بدون صحبت با کسی آنجا را ترک کرد. شاید سرباز دژبانی از واحدی نظامی در جایی دیگر بود که برای جستجوی اطلاعات فرستاده شده بود. درجه سرجوخه ای داشت. به نسبت سرباز دژبانی مردمی بود نه؟ این را یکی از کارمندان گفت. رئیس ایستگاه ساکت بود. در حقیقت سرباز دشبانی نسبتاً بی تکبر بود. در ذهنم نمی توانستم به این نتیجه برسم که بعد از پیکادون ششم ماه اوت مقرور بودن نظامیان چه مفهومی دارد. رئیس ایستگاه به طور کلی با خواستم موافقت کرد. با این گفته که فردا یا پس فردا باز هم برای پرسیدن وضعیت خواهم آمد بازگشتم. خانه های جامانده در خیابان های این اطراف هم فقط اسکلتی بودند. صفال های سقفشان ریخته و برامدگی های لبه بامشان خمیده شده بود. شیشه های پنجره ها همه شکسته بود. چارچوب پنجره های باقی مانده کچ شده و باز نمی شد. در خانه های هم چارچوب در را کنده بودند و از آنجا رفت آمد. قدم زنان از مسیر نزدیک به کوه برگشتم. در اطراف راه خانه‌ای رنگ شده وجود داشت. از کفشکن مدرن آنجا حدود ده زخمی به خیابان آمدند. کسی که صورتش مانند بادکنک ورم کرده، کسی که موهایش سوخته، کسی که فقط دماغش باقی مانده و زخمی‌های دیگر بودند. به همیانها آنها خون لخته شده چسبیده بود. خانه تابلوی درمانگاه نداشت اما به نظر میرسید مطب دکتر باشد. اتاق معالجهش پر از بیماران بود. فهمیدم منتظر نوبت هستند. شاید افرادی بودند که نتوانسته بودند به ها بروند. شاید هم توانایی روحی و بدنی لازم را برای پذیرش نداشتند. با عجله از مقابل آن خانه گذشتم. مقابل ساختمانی هم که شبیه انبار بود، چندین زخمی وجود داشت که همه دراز کشیده بود. میانشان کودکی دستش را بالا آورده بود. از اینجا هم با سرعت زیاد گذشتم. پارچه عرق گیرم به خاطر عرق و گرد و خاک زرد شده بود. نمیخواستم صورتم را بشویم پس به مسیر امتداد شالیزارها وارد شدم. آب همه ی شالیزارها تمام شده بود. کانال های آب خشک شده بود و ماهی های لاچ گرفتار در حفره های لجن کف آن واقعا استخان شده بودند. یک گنجشک مرده هم کنار کانال افتاده بود. یک قسمت از بالش سوخته و بوی تعفن میداد. بدنش مورب تا نیمه در گل فرو رفته بود. حدود بیست متر هم رد سرخوردنش روی گل ها باقی مانده بود. این گنجشک با کبوتری که در اطراف حسچه های آبی گرفتم متفاوت بود. به نظر می رسید گنجشک در لحظه انفجار در اثر موج شدید به گل ها کوبیده شده بود. نهار را در حال قدم زدن در مسیر امتداد شالیزارها خوردم. از گهپایه‌ی آن اطراف دود سوزاندن مردهها به هوا بلند بود. وقتی به شرکت برگشتم، رئیس همراه چند تن از کارمندان چای گندم نوشیدند. متفاوت از همیشه انگار خبری نبود. همه غرق تفکر بودند. بدون اینکه مقابل کارمندان اشاره‌ای به میگساری دیشب کنم، خیلی ساده گزارش دادم. در زغال زغالسنگ با رئیس ایستگاه کویی حرف زدم. شاید بخت فردا یا پس فردا با ما یار باشد. شاید. خسته نباشید. رئیس با چهرهی گرفته گفت. اما آقای شیزوما، تحلیل مردم در هیروشیما چه بود؟ امروز به هیروشیما نرفتم. چه تحلیلی؟ برنامه رادیویی بسیار مهم فردا، در رادیو اعلام شد که فردا قبل از ظهر برنامه رادیویی بسیار مهمی پخش خواهد شد برنامه‌ای که همه دربارهش اش و گمان‌هایی میزنند بی حسی زبانم را به یاد دارم هیچ نظری درباره برنامه رادیویی فوق‌العاده فردا نداشتم اما فکر کردم احتمالا درباره صلح تسلیم یا آتش بس باشد جنگ در خاک اصلی ژاپن دیگر از زبان افتاده بود کارمندان همه ساکت بودند اما وقتی کسی فکری میکرد و زبان باز میکرد دیگری در تایید حرف او جوابی میگفت دیگری که حرفی میزد باز کسی دیگر تایید میکرد خلاصشان به قرار زیر بود امروز هواپیماهای دشمن آرام گذشتند بمباران نکردند و از طرف نیروهای خودی هم به سمت آنها شلیک نشد دیروز هم شلیک نکردند بمباران امروز ای واکونی هم با یکی دو روز گذشته متفاوت بود سیاستمداران مداران مرکز با دشمن حرف زدند و فردا قبل از ظهر نتایج آن برای عموم گفته خواهد شد هواپیماهای دشمن به شکل فاتحان پرواز و ایجاد وحشت می کنند پس نمی توان به صلح یا آتش بس دو طرفه فکر کرد بقیه هم فقط تسلیم است با این حساب ارتش دشمن در خاک اصلی ژاپن پیاده خواهد شد کاری که ارتش ما در مناطق اشغالی خارج ژاپن انجام میداد. دشمن بنادر را اشغال و ارتش ژاپن را خلع سلاح خواهد کرد. شاید برنامه رادیویی مهم فردا اعلان جنگ به شوروی باشد. اگر این کار شود، کشورهای جهان را دشمن خودمان خواهیم کرد. سربازان ژاپنی که به جبهه های خارج مرزها اعزام شده اند چه خواهند شد؟ ملت چه خواهد شد؟ هرچند زندگی بهتر از آن چه اکنون هست وجود ندارد اما اگر کشور سقوط کند هم باز ما آمادگی داریم اما چه نوع آمادگی نمیدانم. دشمن قوی است آیا تمام مردان ژاپنی را اخته نخواهند کرد با همه این حرف آیا قبل از افتادن بمب اتمی نمیتوانستیم تسلیم شویم نه چون پیکادون انداخته شد تصمیم گرفتن تسلیم شویم دشمن هم باید شکست ما را فهمیده باشد شاید انداختن پیکادون ضرورتی نداشت در هر صورت باید افرادی را که مسبب این جنگ شدند حرفها داشت از کنترل خارج میشد. پس بیش از این به حدس و گمان ها ادامه ندادیم دوباره مذاکرات ایستگاه کای را به رئیس گزارش دادم رئیس گفت خب پس لطف کنید برگه هایی را که باید به رئیس ایستگاه کایی بدهیم تا قبل از ظهر فردا تکمیل کنید فردا برنامه رادیویی فوقلاده هم وجود دارد. پس با تحقیق به شکل قابل فهمی آنها را آماده کنید. اگر مانند قبل سوء برداشتی از آن وجود داشته باشد با مشکل روبرو خواهیم شد. این دستور رئیس کارخانه است. رئیس آشکارا و به شکلی که همه کارمندان اطراف بشنوند این جملات را بر زبان آورد. برداشتی مانند قبل؟ مربوط به بهار امسال بود که محتویات واگن زغالسنگی به خاطر اشتباه به شرکتی دیگر حمل شد. بعدن فهمیدم که اشتباه شده اما در این ماجرا شرکت نظارت بر توزیع زغال‌سنگ شرکت ما را قربانی کرد. به رئیس و کارمندان گفتم که در راه ایستگاه کوئی رنگین کمان سفیدی دیدم. آن وقت رئیس به میز غذاخوری زد و گفت: «بله، تو هم دیدی. من هم وقتی در توکیو بودم» در روز قبل از حادثه 26 ششم ماه فوریه، چون این چیزی دیدم. رنگین کمان سفیدی بود. رنگین کمانی کاملا سفید از وسط خورشید به اطراف کشیده شده بود. حدود ساعت 11 صبح روز قبل از حادثه 26 ششم ماه فوریه، وقتی رئیس کارخانه در میاکزاکا قدم میزد دریا آرام و صدها کاکایی نقره ای در خندق اطراف قصر امپراتوری جمع شده بودند. دهی پایانی ماه فوریه بود و قازها هم در ساحل جمع شده بودند. اما کاکایی ها به قدری زیاد بودند که نمیشد فهمید صدها قطع هستند یا هزاران. وقتی فکر کرده بود این بسیار عجیب است، باز چیز عجیب دیگری دیده بود. رنگین کمان سفیدی از دو پهلوی خورشید گذشته بود. این نشانه شر است رئیس با چهره جدی گفت روز بعد آن ماجرا ناگهان حادثه 26 فوریه رخ داد بنا این قبل آن روز بود که با شهردار راجب دیدن رنگین کمان سفید صحبت کردم جا خورد و گفت رنگین کمان سفید از خورشید میگذرد. این نشانه نجومی تنش و جنگ است چیزی که شهردار گفت ظاهران شرحی تاریخی بود فکر کردم این حرفی احمقانه است اما سپید دم فردایان روز واقعی 26 امه فوریه رخ داد آنچه من دیدم مثل این بود که خورشید را به سیخ کشیده باشند رنگین کمانی به نسبت کم ارز بود بله با اینکه باریک است اما رنگین کمان سفید ساده و تعیین کننده است شاید نشانه نباشد اما رنگین کمان سفید مانند خدای تنگ دستی است یک روز تمام راه رفته بودم پس احساس خستگی می کردم تصمیم گرفتم برگه های مربوط به واگن زغال سنگ را فردا قبل از ظهر آماده کنم شام را با رئیس و کارمندان در غذاخوری خوردیم آهسته به رئیس گفتم هنوز نوشیدنی باقی مانده رئیس گفت خوب است خیلی خوب بعد از شنیدن برنامه رادیایی فوقلاده فردا شب می نوشیم.